شاد باشه حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز به تست بلک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل به با اش دل ببندیم از که دل به پیچینه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که قلب سبز پیچینه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به همگی حال احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین یک هفته دیگه بازم ما برگشتیم من فرشته منافی اینجا رادیو پاس فردا و باز هم همچنان با موضوع مدرنیسم ایرانی این هفته هم با شما ایم چیز اجازه بدین قبل از هر چیز چون شاعرمون این هفته دیگه خیلی مدرن شد و شعر رپ سرود برامون دیگه ما مجبور شدیم که رپ بخونیم یا رپ مدرن شدیم دیگه رفته پی کارش از تو خونه گرفته تا همایش یه روزی عاشقی راهش نامه بود واسه آشقا تلفن افسانه بود اما حالا لیلی مدرن و شیکه مجنون نمی کنه خودشو تیکه, تیکه دیگه سقف زندگی دستیافتنی نیست واسه آشقی باید باشی تو آرتیست اصلا بیا بریم سفر یه جای دو بزا برم بود کنم برات یه تو گذشت دیگه زمونه اصف و درشگه باچه ماشین هم چه خشکه خشکه. بگی گازشو بریم سفر مفر با اتوبوس عادی نه سعید و سفر یه زمانی بود که ما رو فلک می وقتی یه چیزی میخواستی دک می یه زمانی بود که ما رو فلک می وقتی چیزی میخواستی دک می الان چاره همه چی شناسه واسه هر چیزی اینجا یه کار شنابسه. الان چاره همه چی روان شناسه. واسه هر چیزی اینجا یه کار شناست نمرت کم شده بابا مشکلی نیست مهم تویی عزیزم نه چارتا تا ویست میذارمت کلاس تقویتی آخ که گلم چقدر تو مثبتی؟ همه بدن فقط تو خوبی بیبی واسه مامان تو گله بدونه عیبی مدل شدیم دیگه رفته به کارش از تو خونه گرفته تا همایش مدن شدیم دیگه رفته به کارش از تو خونه گرفته تا همایش بله با تشکر از شاعر رپمون و با تشکر از امسی فرشید و سامی و شهرام و همه برابچه ها همطور که میدونید این هفته میخوایم بحث مدرنیسم و زندگی های مدرن ایرانی رو ادامه بدیم تا همه بدونن که ما خودمون چقدر اصلا مدرنیم اصلا یه مدرنیسم میگیم صد تا ادنهنمون در میاد به خدا خلاصه‌ای شما شنونده مدرنی هستین از انواع و اقسام امکانات مدرن مثل پخش زنده از سایت رادیو فردا پخش زنده یا دانلود از اپلیکیشن و ساند کلاود رادیو پس فردا ماهواره و یا رادیو شش موج همسایه‌تون هر کدوم که میتونین از همه اینا استفاده کنید و به ما بپیوندید این هفته هم همچنان مدرن شده رو برین همطور که اول برنامه هم گفتیم این هفته هم موضوع مدرنی و عرض به حضورتون که امروز میخوایم یک نگاهی به روابط و آشنایی های دختر پسری ببینیم مدرنیسم چه شکل رابطه ها رو قبل از ازدواج از اون حالت سنتی و خانواده محور رسونده به رابطه های امروزی و اینکه جوون های این دور زمونه چ نقدر با جوون های اون دور زمونه فرق کردند پس امروز قراره بریم گشتی توی دنیای تین قرن اتم بزنیم ببینیم تو دنیای اونا چه خبره؟ برای بزرگ داشته علیه. مولانا اینوز تو دانشگاه یه برنامه داریم بعد من مجریم بعدش داشتم شعرهای مولانا رو میخوندم و خودم آماده میکردم آفه. یه شعر دیدم یاد برنامه تو افتادم خوب. گفتم بذار و ستون بخونمش بخون بخون. بیا ایمون زجانهای مستان ببین اندیشه و صدای مستان ما یافکن وردی مستان به فردا توی فردا و پس فردای مستان ببینیت با. خدافید به به با. به به یعن ببین مولوی هم در مورد موشر گفته. ها حالا ما اینا تو برنامه نمیگفتیم ریان نشه آره بابا هر حال همیشه به ما لطف داشتن به خدا خیلی متشکرم او یس او یس او یس گفتم بگوه ایگو falo. بعدموزو تر میگفتا. حساسیت می‌کرد. او oh یس. Yes. Oh yes. متکرم. خانم آقایون دکتر خانم آقای پسران میگم شما خیلی وضعیتون خوبه؟ خیلی؟ ماشالله حساب بانکیا پرو پیمون دیگه. دیگه اصلا نمیدونید چی کار کنید با پولاتون، نه؟ نه؟ اینجوری نیست. این خبرو نیست؟ آقا پس چرا شما تمایل ندارید وقتی هواپیماتون تأخیر میکنه؟ برید خسارت این تاخیر رو از شرکت هواپیمایی مربوطه بگیرید. چرا؟ این ما نمی‌گیم. اینا رئیس مربوطه داره میگه اینا. تو اما و اطلاعاتی که ما داریم بعضی اینکه این موضوع نظامنامه اعمال شده مردم خیلی کم مراجعه می‌کنن به اینکه خسارت بخوام بگیرم. بیا یعنی مردم به این مایه هرگز ندیده اومدی. یعنی الهی من قربون مایه داریاتون برم من. ولی برید پولاتونو بگیرید ها برید بگید آقا این تاخیر میکنه اینا پولا گذاشتن کنار براتون نوشتن اونجا حتما رفتید بگیرید بعد انقدر سر بوندن بوندنتون از فرواز بعدیتونم هم جا موندید اونها ما رو بگیرید ما وظیفهام بود فقط به شما یادآوری کنیم که ظاهرا این گذاشتن یه جایی یعنی یه جای هست میتونید برید بگی حالا دیگه مسئولین واسه هر پول دادنی 70 تا گردنه صاب و عبور پول گرفتنی ست تا اتوبان باز, باز میکنند دیگه مشکل ما نیست که ما اصلا مشکلی نده آقا من فقط گفتم حالا حالا من نمیدونم اگه دادن ندادن بعد یقی ما رو نگیرینا این مسئولش اینجوری گفته دیگه به ما چه. به ما چه. خرشید جو سلام, سلام واقعا آلی. حق با تو بود مشت بسیار سرد شده, شده. دیدین دیدی و یک دفعیم شروع شد سرماش خاطر همینم ما اومدیم بندراباس با حدود 28 درجه حرارت بسیار عالی کنار خلیج نیلگونه فارس یادت هستیم چه عجب نامرده های همه جای گرم که میرن یاد من میفتن نه دمتون گرم ولی اب نداره دیگه ولی کاش همه مشهد مونده بودی ی. چون بلیط هواپیما میگن از دیروز 4 برابر شده حالا با اتوبوس برگردی هم نداره وش فکر نکن همون شما از آفتاب لذت ببر <gülüyor> دیدین دیدین این دوستان هم گفت هفته پیش چی گفتم بهتون نگفتم گفتم چوغندرا رو در بیاریم بپرسیم بره کارخونه قند نگفتم نارگی پرتغالایی رو کن رو شاخ است بچینی نگفتم وینتر ایز کامینگ گفتم دیگه گفتیم وینتر ایز کامینگ گفتیم یا نگفتیم دیدین بابا این چیزا رو که ما باز خودمون نمیگیم دیشب تکاب هوای 17 درجه 0 بودن کم نیست که تبریز 11 درجه رفت زیر 0 ارومیه 9 درجه زیر 0 بود این سرما و برف و گران هم همینجوری از غرب داره میاد به سمت شرق کشور فردا میگن احتمال زیاد توی تهران برف داریم خوشحال باشین کلی هم میگن کاش دما داریم اینه که یه چیزی ما اینجا میگیم گوش کنین دیگه انقدر همه چی شوخی نگیریم دیگه درسته برمه ما شوخی طنزه بله ولی بله دیگه سر آب و هوا ما با کسی شوخی داشتیم تا حالا نداشتیم که والا شوخی نداریم بریم ببینیم این آقای اه آقا دشتی ما کجا هاست امروز برو بریم ماشین مشتی ممدلی هر زنوبی مغتلی ماشین مشتی دلی نه داره نه سندلی یعنی شما خودت تو کار ساخت و تازو این حرفایی؟ باشه سوال دارم من از شما امروز یکی از بدتاتی سرخط میگفت میخوان خونه قسی نسی برفوشن آره دیگه این دولت مولده اتمند میخواد برفوشه دیگه آره خب چی هست این شرایط مرایط شما در زریانی؟ زونه؟ نه ببین البته ما تی کلب خرابه ای از بابامون به امون ارت رسیده خدا رو شد خونه رو داریم اما داشت آخه کوتی که بعد بدمت سب دیگه. ما دختر بزرگ داریم، پسر بزرگ داریم، کلا تی تو خونه دوتا اتاق داریم. یعنی به مولا یعنی یه دقیقه هم نمیتونیم با خانم سی خلوت کنیم. به خدا زایاستی که گفتی مایی بشی سی این آلوناکا رو برفوشیم یه دوری خونه بزرگتر بخریم دیگه. اگه بشه دیگه. زونم شرایطش خوبه. زدی میگی؟ یعنی شما خودتم هم سی دیگه. آ دوست تا رفیقات هستم. خب میتونید اش سفارش به فارش ما رو بکنید بهشون دستت در نکنم تیز این من تن در میاد قصدش داشت زون مرگ من ماهی سه میلیون تومانه، سه میلیون یا ماهی سالی ماهی زون من ماهی سه دستشون در نکنه با یعنی چی آخه کردن اینا در چی آخه مردم چی آه کسی که فقط مایی سه میلیون قصد خونه میده باس مایی 10 میلیون درآمد داشته باشه آخه نو که آخه نا کرده هم شما هم نفس تبزای گرم در میاد نسین نه شما رو نمیگم میخندی داشت <تصح> نه شما نمیگه والا دیگه میگم دیگه دروغ میگم بگو دروغ میگه کلا همینه دیگه هر رای چیزی هم که میذارن چی واسه مایه که مایه دارن کسی دلش کسی فقیر بیساره ها نسخته که نکره که ماهی سه میلیون. ای من میتونستم ماهی سه بدم که همون اتوبوس فکستنی برایم این نختم افتاده گوش پارکینگ به خاطر چهار تا لوازم یادکی والا به مولا چی؟ برم این سنگ قبر بابا موهین رو تلا بگیرم حتی اقل این آلونه کبند خدا واسه ما گذاشتیه من کلامون بسه چه بود زونه تو تو این دور زمونه. بدون خونه. مایی سمه زونه سی فرمود هت خانومو توی بابا هت خانوم هم شما بیخیال دیگه یه دوری پیداش میکنیم با هم اختلاط میکنیم چیزی گفتیم چه غلطی کردیم آره شما با اون کار نهشده باش دیگه حالا ما یه چیزی گفتیم همین میو میری پایین دیگه آشده داشت بزر باستم چنات سه میلیونو خب من نمیدونم این ماهی سه میلیونو اینو از خوداشون در میارون من سرگردون ساده سرساده دوستان شنونده رادیو پاسوردا می‌خوایم بریم سراغ موضوع امروز امروز شنبه 14 آذر ماه 1394 اونایی که تکرار برنامه می‌شنون یک شنبه پانزده آذر میشنوند اونایی هم که دانلود میکنن میشنوند دیگه هر موقعی از سال ممکنه صدای ما رو و این برنامه 942 رادیو پاسوردا رو بشنوید امروز میریم سراغ مدرنیسم رابطه ای جیک جیک مستون از دوران نامه و تلفن عمومی تا عصر دیت و جاست فرند بیانی شما بگه نوصد بدانید و آگاه باشید اینکه دختر و پسر در ابتدا با هم دوست شده و بیرون می‌روند و فیلم می‌بینند و سفر می‌کنند و شب بخیر می‌گویند و گاه حتی زیر یک سخت با هم زندگی می‌کنند و تازه بعد از همه این مراحل در مورد ازدواج کردن یا نکردن تصمیم می‌گیرند همه از ثمرات مدرن شدن است پس اگر قدر این مدرنیسم را ندانید همانا با چشم و گوش بسته و بدون شناخت پای سفره عقد نشستگان و تازه بعد از ازدواج کم کم با شریک زندگی خود آشنا شدندگانید امزاو جمعی از شریک زندگیشون رو خودشون انتخاب کرده و قبل از ازدواج همه مراحل کنترل کیفیت و پاس کرده با همسرشون مثل اندونی در وسط به خونه نبرده های رادیو پس دا <تصفيق> علی قدیمی رابطه دختر پسری اونجوری که الان وجود داره تعریف نشده بود که یعنی ارتباط دختر و پسر از طریق چندین و چند وازطه انجام میشد یعنی پسره به نننش میگفت زن میخوام بعد مادر پسره میرفت شروع میکرد این ورگشتن و آمار دختره مردمو در آوردن بهترین جا برای آمار در کجا بود همومای عمومی زنونه مادر میرفت میش از تو این حموما هی hey, دخترارو دید میزد غذای کلشون برانداز میکرد عبدالخارای دختر همچی سرخ و سفیدو که میپسندید نشون میکرد میره مادرش پیدا می‌کرد به مادر دو مادر دختر میگفت که برای پسرش دختره رو میخواد. مادر دخترم به بابای دختر میگفت که آره مثلا چه میدونم واسه مثلا خاص کار پیدا شد اگه بابای خانواده طرفو میشناخت و اوکی می‌داد دیگه همه چی بود مهریه و شیربها و عروسی و آقد و دیگه دختر پسر میشدن زن و شوهر تازه از اینجا به بعد بود که این دوتا میتونستن همدیگه رو ببینن و برن و بیان با هم ارتباط برقرار کنن یعنی اولین ارتباط بین دختر و پسر همون شب اول عروسی شکل میگرفت که تازه اونم خونواده عروس و دومات پشت در هجله در حال کل زدن بودن دیگه شما تصور کن دختر و پسر تو چه فضا و شرایطی با هم آشنا میشدن اما اما حالا تو دنیای مدرن دیگه در خیلی از موارد این رسماور افتاده و خانواده فقط نقش تشریفاتی دارند. یعنی پسرها و دخترها خودشون میرن و توی پارتی و مهمونی و کوچه و خیابون و فیسبوک و اینور و اونور و فلان همدیگه رو برانداز میکنن بعد اگه پسند کردن میرن من هم دوستی میدم، بعد دوست میشن بعد از سالها دوستی و رابطه ای تصمیم بگیرن با همدیگه ازدواج میکنن یا نمیکنن بعد تازه اگه بخوان تصمیه میگرن که ازدباچ کنن اینجاست که خانوابادها وارد صحنه میشن اصولا هم نقششون معمولا فقط در همون حد کل کشیدن و کادو دادن و رقصیدن رقص چاقو و کیک بخورن و اینا شام بخورن برن همین حالا این این خوبه یا بده رو دیگه خودتون میدونین ما کاری به خوب و بدهش نداریم فقط گفتیم بدونیم همین صنعت مدرنیسم اشاره میخوام بکنم به ورود مواد غذایی به ایران و غذای خارجی نوشابه و پیتزا اینو پدر من تعریف می‌کرد می‌گفتش که اوایلی که نوشابه وارد ایران شده بود عده‌ای از کسایی که می‌خواستن خلاصه‌ کارگرانی که کار می‌کردن غالبا هر تایی می‌خواستن ناهار بخورن این بله. نوشابه رو توی ظرفی می‌ریختن بعد نون توش تریت می‌کردن و مثلا همون دیزی خودمون اینو در واقع ایرانیزهش کرده بودن و دوم دو همین پیتزای خودمون این پیتزایی که ما تو ایران معمولاً می‌خوریم فرضید خود بهتر می‌دونید نه شبیه پیتزای ایتالیاییه <متحدث> یه مقدار شبیه پیتزای آمریکایی ولی یه چیزی خب دیگه از از از از داشت این بچه‌ای که میاد از اروپا کیشون اومده بود میگه آقا اینو من هیچ چیه این پیتزا رو پیدا نمیکنم من عاشق این پیتزای ایران شدم سین الف هستم از تهران سین الف از تهران خیلی ممنونم از اینکه از مدرنیسم در غذاب و نوشابهام برامون گفتی بله باز بعضی اون اوایل که پیتزا اومده بود پیتزارم با برنج با نون می خوردن و اینجوری بود یعنی اوایل این هفته از شما سوال کردیم و میخوایم که شما بهمون بگید اگه یکی از اجدادتون همین امروز از اون دنیا برگرده بخواد یک هفته باتون زندگی کنه چه چیزایی ممکنه باعث ناراحتی یا تعجبش بشه آلودگی و سر و صدا و و ترافیک بیشتر چاکیش میکنه یا عادی شدن رابطه بین زن و مرد شاید مثلا از سر و شکل و تیپ و لباستون اصلا خونش بره بالا. به تو چقدر با موزیکایی که گوش میدین و غذاهایی که میخورین و فیلمایی که میبینین میتونه ارتباط برقرار کنه ها؟ پس این هفته لطفاً یکی از اجدادتون رو به خونه خودتون دعوت کنید و برامون از مشکلات و درد بگین که این مهمون عزیز در دنیای مدرن باهاش مواجه میشه منتظریم الان تو فیسبوک کوروش گفته قیافمون براشون باور نکردنیه راست دی تو همون وقت بعد براش میخوندی مثلا باور کن غیافم و باور کن غیافه ای که عجب و عجق و خسته است باور کن تیپم و باور کن من این یه رب خوندم جب گرفتت تما کلن میخوام بخونم تو برنامه امروز بعد مینا تو فیسبوک گفته اول تیپ جوانای های امروزی یعنی ایشون دعوت کردن یکی از یکی از اجدادشون از سالهای سال قبل از اون دنیا برگشتن که این دنیا با این ج... الان تو این دوره امروزی باشون زندگی کنن و گفتن اول کیپ جوونای امروزی بعد که با ادبیات و زبون این نسل مواجه میشد یک سکته میکرد یا زار زار گریه سر می چه شایدم حسودیش میشد بله آقا چقدر تناقضا خب هر خوشش میومد حسودیش میشد یا زار زار گریه میکرد سکته میزد دور از جونش تکلیف شما مشخص کنین دیگه البته دیگه کسی که از اون دنیا برگشته دیگه دور از جون نداره دیگه دیگه کرده توی اینستاگرام اه اه شکو گفته از اونجایی که دیگه خیلی مدرن شدم متنی که اینقدر طولانی باشه رو نمیخونم مدرن بودن خستگی میاره خلاصه پست بذار بیا اینم مخاطب مال بیا زحمت بکش برنامه بساز بیا نمیدونم شعر بنویس از شاعر شعر ب... بگو شعر بنویسه سوال مطرح کن آقا پاشین بریم پاشیم بری آقا وقتی شنواندمون تنمون چار قد سال برنامه رو نمیخونه میگه طولانی ما نمیدام به چی بد دلمو خوش باشه واقعا اینه مدرنیس اینه اینه هم درمادا باز شما میخواین یه هفته دیگه باي موضوع انحرافی بله خوبه این هرافی, هرافی برنامه ادامه یعنی چی که آیا مدرنیست برای جامعه سنتی ماشد و قوز بالا بود بعد همه مثالاتون از موبایل و اندروید و اینجور چیزاست با با مدرنیته با ابزار و ادوات مدرن، با تکنولوژی، با فناوری با اینا فرق میکنه دقیقا مشکل هم از همونجاست که شما تو سوالتون خوب میگیم که جامعه سنتی ایران پس یعنی مدرن نشده جامعه سنتی ایران آیا این جنبه های مدرن یا ابزارهای های مدرن براش بالا بالاغوز شده یا کمک؟ خوب پس ما داریم درست میگیم دیگه؟ ما ما غیر از این ما داریم درست میگیم ما, ما که گفتیم فقط تکنولوژی ما مثال زدیم گفتیم مثلا ما در بزرگ،, بزرگ مثلا با آی پد نمیدونم با موبایل مثلا و همینا خب با این ابزارهای تکنولوژی خب ابزارهای مدرنیسم یه جوری اینا یه جوری تقابل سنت و مدرنیسمه که هفته پیشا بهش حرف زدیم راجع تکنولوژی ولی این هفته سن سوال برنامه رو عوض کردیم دعوت کردیم از اجدادشون نوندگان عزیز تشریف بیارن به این دنیا و دوستان و از تجربیات یک هفته زندگی با اجزادشون و برخورد اجزادشون با دنیای مدرن برامون بگن فقط تکنولوژی نیست که امروز داریم راجب رابطه حرف میزنیم مثلا رابطه های مدرن حس اگر خواستید با ما در تماس باشید پسوردات radiofarda.com که ایمیل ماست 204206874150 و 20420733595555 شماره های اس ماست و در فیسبوک گوگل پلاس سام کلود اینستاگرام بچون ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید تلفن های پیامگیر ما هم 20420 بیستو دو یازده بیستو چهار سد و 163 و که از داخل ایران تماس میگیرند و یک خانه پریشار مرا بری ای سرم باش من جانم تو با آب چه زارت من خدا ما ما ما ما دل مال شده مشکل ما دردش تو درمان کردی دیوانه تو این تو چونی می هستی یا فنخاری دل بوری تو ز من که گریزانی خانه خرابت شده سو سا که ما ما از ما غم دوری آقای اون دختر خانم آقای بسراب حاجی خانم چرخنده یا همون خواهر زهرایی خودمون که به حال میشناسین ایشون رفتن توی برنامه یک مصاحبه جانانه داشتن با آقای رشید پور یکی از تاکتیک های جون در این مصاحبه این بود که از اونجا که همیشه در جامعه ایرانی مظلوم نمایی جواب میده ایشون هم در این راستا پای خانواده شو هی hey, کشیده وسط و مثلا اینجوری هی hey, از مادرشون مایه میذارد. تو دانشگاه فیلم دارم که حمله کردن منو مادرمو بزنن من این فیلم ها رو هیچ جای ندادم و نخواهم داد یا مثلا این یکی میان و دست مادر من مادرم میکنم و بعدم اونجا خارج میشن این یه مثاله... مسا این میزنه بله پشت سر مادر من یا حتی این یکی که با حضور فرزندشون ظاهرن به وقوع میپیونده تو رو خدا به من توین نکنین بچه من میشیان داره داغون میشه بله ارعرض کردم مضلوم نمایی تو جامعه ایرانی خوب جواب میداقا خوب. این قرائن و شواهد دو تا چیزو نشون میده و اونم اینه که خانم زهرای عزیز هم خانوم چرخنده گذشته اولا خیلی فکر شده و با تاکتیک اومده به میدان مبارزه و دوم اینکه که کاملاً مخاطبشو میشناسه و میدونه از کجا باید بره تو مخش نفوذ کنه در ادامه مصاحبه پروژه مظلومنماییشون اینجوری ادا پیدا میکنه که اولا مخاطب متوجه بشه که خدای نکرده ایشون حتی یه قرون هم از سپاهی بسیجی جای اینوری اونوری بابت این مجلس گرم کنی هایی که تو این دو ساله کرده دریافت نکرده هر کی دو هزار تومنگ داده به من بیاد ست تومن بستونه بره من ناموس شیعه بله و این ناموس شیعه نه تنها که چیزی نگرفته تازه هم کردنشون بیچاره. برده فقط در دانشگاه قوم و اسفحان تولد حضرت زینب نزدیک به 600 تا چادر دادم بله 600 تا چادر مشکی خیلی ها خیلی 600 تا آقا ما رفتیم تحقیق کردیم چادر مشکی چی میگن بهش میگن نانو لمدار یا همچی چیزی آره بلدی همین تو همین مایه خارجی همین الان کف بازار تهران 380 هزار تومن هر دونش 380 خب الهام جونم دستش به کم نمیره که حتما خارجیشو خریده که برحال خانمایی که چادری میشن با جنس خوب بشن دیگه آقا اصلا روند بازارو ول کن ایشون کلی خریده کلی رفته خرید کرده بهشون تخفیف دادن سی دادن هر چادر سی هزار تمام شد رفت یعنی میکنه به عبارتی 600 تا چادر صد صد صد صد صد چقدر میشه بذارید بزنم 600 تا چقدر شد؟ صد و هشتاد میلیون تومن؟ آقا یعنی الهام جون چادری شدن خودش و چادری کردن دیگران فقط یه رقمش صد و هشتاد میلیون تومان براش آب خورده همطوری که خودشون گفتن البته ها؟ همشم از ارث پدریش دل. کسی داده کسی بهش نداده که حالا هم که خودشون اعلام کردن هر کی داده باید با سودش پس بگیره والله خودشون گفتندی. دیگه البته ایشون در ادامه اعلام کردن نه تنها از هر سو از دنیوی بری هستن بلکه حتی در عالم هنر هم خیلی متوازن من و پدر جد بختیاری هم نمیتونه جای خانم گگوش باشه خب اینم برای اونایی که همش هی خانم گگوشو با الهام جون اشتباه میگرفتن هی اشتباه نگیرین دیگه اما در پایان به به های ملحد خارجی هم یه حال اساسی دادند شکلی الانم فکر نکنن تلویزیون های اون بر میتونن از این حرف من سو استفاده کنن و اینم سهم ما دیدی تو رو خدا آدم مصاحبه هم میخواد بره بکنه عین الهام جون با یه حرکت بزن 17 طرف بزنه 17 طرفو بزنه وسط نصف کنه علکی که آدم چرخنده نمیشه که بالاخره دخالت گرونی ما از خطاهای آدمیست است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشن. ام ملکموتی سلام سلام فر جان سلام همگی چه خبر ها؟ اول هفته حالا ف در اصلی که روز به روز از همه نظر و در همه زمینه جهان دنبال مدرن شدنه متاسفانه تو کشورمون هنوز امکانات اولیی هم نیست چه برسه به مدرنش چطور چی شده یکی از مشکلات بزرگ تو سینما ایران کمبود سالن نمایش فیلم حالا اینکه چقدر مدرن باشه سر جای خودش این کم بود باعث شده خیلی از فیلم‌ها نمایششون محدود باشه و دولت مشخصا و مشخصاً وزارت ارشاد برای اینکه سر صدا رو به خونه یه گروهی درست کرده به اسم گروه هنر و تجربه که فیلم ها فقط توش اکران میشن امروز نا تو خبره اومده بود که فیلم مستند من ناصر حجازی هستم ساخته نیما تباتبایی که حدود دو سال ساختنش طول کشیده قراره از 23 آذر تو گروه هنر و تجربه اکران بشه در از که فیلم قابلیت اینو داشت که اکران بیشتری داشته باشه و حداقل طرفدارای فوتبال به رونق سینما کمک بکنه حالا اگه موافق باش بخش هست صدای فیلم رو بشنویم من بعدم بیشتر توضیح میدم بشنویم من اون گالبرگ مغرورم که میمیرم زدی آبی ولی با زلط خاری شبنم نمی کردن ماموی بردشکار کوچیکی واقعا جای ناصر اجاتی خالیه ولی ناصر وقتی میومد اومدیه با حتی دیگه ای دار کسادت باش که اینو حمله کنن که بکوبنش با این جایگاهی که داره یه دفعه کنارش می زارن نظر روی روانی خیلی میتونه تونه تأثیر بذاره به چی ساکی شای من از تینک می کردم یه رنگ رنگ مسائلی بود. بخش از صدای فیلم من ناصر حجازی هستم ساختین ایما تبا رو شنیدیم منتظر توضیحات بیشتر تصدیم کامرا فیلم از مصابه های مختلف و شرای وردشی هنری تشکیل شده در رابطه با ناصر حجازی در پنج بخش به زندگی و فعالیت ناصرخان میپردازه شاب حسینی بهرام رادان پرویز پرستی، مسود رایگان و مهران مدیری راویان این پنج بخش هستند بله بسیار از موسیقی چه خبر؟ کامرا. از موسیقی اینکه امیر فردوس خواننده موسیقی پاپ که تا الان به باسطه فضای مجازی و اینجور چیزا فعالیت میکرد خوب طرفداروی زیادی هم داره اعلان کرده اولین آلبوم رسمیش مجوز گرفته که به زودی وارد بازار میشه اسم آلبوم دژاووست و آهنگ دژاوور فعلا عنوان نمونه البته باز در فضای مجازی منتشر کرده و تقدیم کرده به علاق منداش. بسیار خوب بریم همین کار دیجاویی که گفتی رو به اتفاق بشنویم و باید خدافزی می‌کنیم کاملان عزیز تا فردا تا فردا خدا نگه زیباترین تصویر تاریخ لبهای تو وقتی که میخندی تو سین قلبم جا به جا میشه هر بار که ملکاتو میبندی میدونی با دستای من میشه گفلای تو البت رو بازش کرد توی سکوتت میشه عاشق شد احساس تو میشه نوازش کرد با من زندگی کردی یک عمر قبل از این که پیداشم دیدی منو و عاشقم باشی دیدم تو رو عاشقت باشم ایو سلام به هستی شب شب لازم نه تحیل از هشدار رئیس جمهور ترکیه به رئیس جمهور کشورمان در باره اتهام های ایرانی به او و خانواده اش با مروری بر سرخط مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز می‌نماییم متهم شدن یکی دیگر از مدیران فیفا به دریافت رشوه از سوی پلیس فدرال آمریکا و خوب سه ناظران از پلیس که آقا بیخیال الان فکر کنیم شما تو فیفا دنبال رشو نگرفته ها بگردید راحتر پیدا میشن تا رشوه گرفته ها تهدید به ایجاد اخلال در سخنرانی رامنی مصطفى مهین توسط گروه تندروی دانشگاه و عراق و نظر کارشناسان که با بزنی این تندرو ها اخلالشونه بکنن این اخلال جمع میشه توشون میشن یه چیزی تو مایه های داعش؟ و اصحاب نظر محسن رضاوی میر در مورد اینکه ایران اسناد فروش نفت داعش به ترکیه را در اختیار دارد و توسیه کافشناسان با آقای رضایی که این حرف روی و ما گل میدیم این دفعه به تو رعی بدیم به شرط که تو هم قول بدی بازم برامون کاندیدا بشی مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروف خبرها با هم بل بلبل سلام. با توجه به انتشار خبر احداث یک مرکز همان حیوانات در چین داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران به خبرنگاران گفت موضوع شرب احساسی کردن انسان میتواند تئوریکال باشد ولی به صورت عملی نداریم و امیدوارم نداشته باشیم دری رابطه یکی از کارشناسان علاقمند به همان ضمن ابراز تصم از این اظهار نظر پدر ژنتیک ایران و خبرنگار ما گفت همان انسان میتواند علم بسیار مفیدی باشد. تا در صورت داشتن این علمی میتوانیم مقام معظم رهبری و یا آیات عظمی چون آیت الله رانتی و احمد خاتمی را همانند سازی کنیم تا خدای نکرده در اثر ارتقال این عزیزان کشورمان از کپی برابر با اصل آنان همچنان بهرمند بماند پایان مشروع اخبار ای وای، بابت تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر. خدا نگهدار. شی بابا، بلبل وای بل بل خدا وکیلی، این همانندسازی را بیفتید. من خودم اولین مشتری شما. ای وای، چی آقای میکروفون سلام. چه دیگه خود خودت الان انقدر از نزدیک من میشناسی بلبل بل دلت نمیخواست به جای بل پنج تا شب منو می‌چوفن، منو الان. هاي شو شما، والا چی بگم؟ بگذریم حالا. چرا بگذریم؟ ببین من همیشه احساس می‌کنم بلبل کم بل هستم. یعنی اینقدر توانایی و قدرت تو این وجود هست که داره اینجوری اسراف میشی به خدا. یعنی باید کوپی کادی بشید. فهمو این، حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. نگاه کن. این دکتر تو کی داره تحقیق می‌کنه؟ این چیکار می‌کنی پس؟ بگو بزن قال این همانن سازی اینا رو بکنه دیگه اینا رو همه رو دوستور زمینه تحقیقاتیش به این سازی افورماتیک قدرت در اون ریزه به این سلولی یاخته بی پناه در بکراند سیمتماتیک خوشخیم بدون درمانه آقای میکروفون طلا باشه بگو همون ادامه بده این دکتر که من میشناسم همون کار خودشو ادامه بده اصلا بهتره باورش با کن چی تو چیزی دیگه یوم میاد همانن سازیمون میکنه همانا نمون میشه وزغ بیش فعال نخواستیم با باورش دکتر تو رشته خودش تگه ها علی من برم الان میرسه خدا فر خدا فر تو تعریف نکنی من نمیدونم کیو تعریف کنی تا هفت سال پیش در چون این روزی به همی بول یادج پادشاه تایلند در این کشور دیده به جهان گشود که این روز در تقویم تایلند به عنوان روز ملی تایلند نامگذاری شده است گفتنیست که ایرانیان به خاطر نقش تاریخی تایلند در پر کردن اوقات فراغت ایشان هموار این روز را گرامی داشته و برای بهومیبول بول پادشاه این کشور که امکانات مختلف و متنوعی را در جهت خوشحال نمودن ایرانیان محرومیت کشیده، به خصوص در دو شهر مقدس پوکت و پاتایا فراهم نمودند، سلامتی و طول عمر آرزو می کنند. امروز جمعه کنار پنجره نشستم تو ساری هم داره بارون هم میมาره نم نم هوا عالی توب بسیار خوب ولی یه چیز خیلی بد و زشتی دیدم یه آقای اومده اب معدنی درشو باز کرده یکم رود از ماکینکس پاشیده داره ماشین داشت بردش رو تمیز میکنه بعد اب معدنی رو پات میکنه تو خیابون اون دستمالای کنکسش هم پات میکنه تو خیابون اون عجب. ماشینش هم پژو 405 نمره ساری بابا نکنین کارو زشته یه زشت ذره شخصیت داشته باشین یه ذره تمیز باشیم شهر ما خانه ما خیلی متشکر الان شما کل پیجو 450 و پلاک ساری رو الان بردی زیر سوال یعنی حداقل دو شماره اول پلاکش هم میگفتی اینجوری همه در مزانه تا نباشند نباشن دیگه بندگان جا زمنه ابراز انزجار از حرکت این عزیز از صاحبین سایر پژو 450 فلاکساری عذخای میکنم کنم منظور با هم همه شما نبودن با اون فرد خاطی بودن که آشقا ریخته بودن و دستم کاغذی پد کرده بودن و هم توزیاتی که داده بودن بعد. قدیمما دختر پسرا که میخواستن با هم حرف بزنن یکی از شکنجه هایی بود که شما بری تلفن عمومی بخوای با عشقت لا بتر کنی حال شما تصور کن دم کیوس کم یه صفح طولانی تشکیل میشهد یکی میخواد مثلا به دخترش که مریزه زنگ بزنه اون یکی میخواد به اداره برق زنگ بزنه بهشون بابت قطع برقش بده و اینکه میخواد به بانک زنگ بزنه چهکش رو جاره نذارن بعد آقا با داره با عاششقش هم که حرفهای عاشقانه مایل به شب به خیری و عینا می اینجاست که دیگه باید یا صدای برخورد سکه، با در کیوسک رو هم به بکراند اضافه کنیم در حدی که دیگه آخرش بچا ق عزیزمون مونده تلفنشون رو مجبور میشن قطع کنن این تصویر شما مقایسه کنید با الان بچه ها صبح از خواب پا میشن هم تو رختخواب از خوشون سلفی میگیرن میفرستن واسه هم زیرشام می نویسن حال من بیتو آخه این در حالیه که یه ساعت دیگه قرار دارن با هم برن بخورن بعد هم تا نهار بای بای میگن بعد نهار میرن دیزی سنگی میزنن برای پاستاش سنت‌های ملی و در نهایت غروب هم بعد از یک پایان کاری یا حالا یک روز درسی تشریف میبرن کافی شاب با هم یه اسپریسوی بزنن و یک کمی بیشتر به اتفاق وقت بگذرونن بعدش هم با بوغز دوباره از هم جدا میشن و از اینکه هنوز نمیتونن شب سر با هم دیگه روی یه بالین بذارن هی قصه میخورن، هی قصه میخورن چونه که آدم دلش کباب میشه بلا حالا یکی نیست به ما بگه ا اینجوری مدرن جدید اینا رابطه است و رابطه های تو هم با تلفن عمومی قدیمی چی بود؟ ها اونا چی بود واقعا؟ بازین چه شورش است که در خلق اغلم است بازین چه نوحه و چه عذاب و چه موقع بعد از یا ی اصفبار دست دابدن وزیر امور خارجه با رئیس جمهور آمریکا بدین وسیله زاگه یا و تکان ی قرار گرفتن معاون رئیس جمهور به کشورمان با رئیس جمهور امپرگلیست امریکا در یک عکس دست جمعی در پاریس را به کلیه مردم آمریکا و سفیز کشورمان تسلیت میگوید در این عذاب جانسوز کفندران به خیابان ها میاوییم تا به همگان اعلام کنیم که در نظام مقدس ما هیچ راهی نیست که به آمریکا خطر شود شعاهای مراسم معاون روحانی کنار یانکی نرو آمریکا در چه فکری دست دادنها چیه؟ با توجه به مستعمل شدن کفندهای استفاده شده در مراسم متعدد قبلی بین تمامی شرکت کنندگان کفنهای نو و با کیفیت توضیح خواهد شد اتحابیه یک کفن پوشان بی احصاب امریکا کل کشور فریبرز غریب سلام سلام به تو همای همکارا و همه شنمندگان محترم فریبرز انگار خیلی خبر بوده تو این چند روزی که ما نبودیم آره تا دلت بخواد خیلی از گفته های امام جمعه موقت اصفهان حجت الاسلام محمد تغییر رهبر شروع می کنم جان که به کالوس کیروش گیر داده بود ای بابا حالا که محمد مایلی کهن همراه تیم امید ترکیه است هاجاقا به کیروش گیر داده آره آره حاجی گفته در بخشی از صحبتاش که جوانهای کشور که میتونن پهباد آمریکایی رو از آسمون به زمین بکشن و مشابه سازی کنن یا دل اتم رو بشکافن و کلی دستا بسازن وقت ما باید به دنبال غرب زدگی بریم و فول میلیاردی بدیم سرمربی خارجی بیاریم انشاءالله برن یه مربی از روسیه ای چینی لبنانی بحرینی جای بیارن مشکلاتشون حل میشه میگه چه خبرو قضیه تو این یکی دو روزه دوباره دستگیری چند تا از مقامات فیفا رو داشتیم به خاطر پولشویی و فساد و رشوهخاری که کلی خبرساز بوده جالبه تو خبرها اومده یکی از افراد دستگیر شده خودش عضو کمیته اخلاق فیفا بوده عجب منم فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال بوده یا فدراسیون بین‌المللی رشوهگیری مسئولین تو رو خدا رسیدگی کن ما گیت شدیم واقعا آره فرسی جان واسه حسن ختم ورزش امشب اگر اجازه بدیو موافق باشی صحبت‌های علیه پرمین پیش کسبت خودبال رو گوش بدیم که دو روز پیش به مناسبت سالگرد شبکه سی سیما در مورد سریال های تلویزیونی و برنامه ورزشی مخصوصا برنامه ورزشی نهود فردوسیپور حرفای بامزهی زده نشنابیم و خدا کنه که همیشه اتفاق بیفته که این سریال های خوب بازی کنن که مردم ما دیگه نرن این ترکیه ها رو نگاه کنن. ولی خیلی برنامه 90 که آقای فردوسی پوری که دوستای خوب منه و اوایل خیلی انتقاد میکرد که من خودم شخصا بهش گفتم ولی الان خیلی خوب شده، دعوا زیاد نمی‌ندازه. خودم من تا اونجایی که چشام بچه بیشتر بیشترم بهش گفتم واسه شاطرا پخش می‌کنه. وا یه جوری میده تو 2.25 دو دو <تصفيق> <تصفيق> بسیار خب این هم حرفای علیه پروین به مناسبت سالگرد شباکی سه سی سیما گفتی آره؟ بله بله, <تصفيق> بله،, بله،, بله. ممنونم ازت فری برز غریب تا فردا تا فردا خودا نگه از مدرنیسم رابطه‌ای حرف میزنیم از رابطه های دختر پسری قدیم و جدید قدیما اوج ماجراجوی عشقی بود که پسر میمد زیر پنجره دختر یه دهن آواز میخون دخترم یه نظر میمد پشت پنجره دزدکی نگاهی میکرد و میرفت داخل یعنی این دیگه تهه تهه تهه ماجراجوی عشقی بود که البته این وسط هم گاهی خاندان و دختره از را می رسیدن با بیلو کلنگ از قجرات پسره در می و بعد دختره هم سریع شوهر می دادن فاسد نشه بعدها که کمی اوزا بهتر شد ماجراجوی عشقی این بود که تو خیابون مثلا دست دوستخترت یا تو بگیری یه دو قدمی را بری بعد کم کم باز ایرانی ها پیشرفت کردن و حالا توی کوچه خلوتی جایی بلاخره یه بوسی بغلی و رد و می شود. خیلی سری اینم به این ماجراجوی اضافه شد الان دیگه شکر خدا کمترین ماجراجوی عشقی اینه که مکان و خونه خالی فراهم بشه دست طرفو بگیری ببری خونه چار جهت اصلی به همشب بخیر بگین یعنی کمتر از این دیگه عادی شده جوی عشقی حساب نمیشه چند سال دیگه چی میخواد بشه رو؟ والا ما دیگه دی بول انقدر مردم مدرن شدن تو حوزهی روابطشون که من گاهی دیگه دوستامو نمیفهمم این زهره دوست خیلی قدیمیم دیروز اومد خونه ما سه چهار سالی هست ازدواج کرده بهش گفتم بچه مچه خبری نیست گفت نه بابا از این مرده که الدنگ آدم بچه پسنده بهتره دیدم شاکی بحثو ادامه ندادم یهدم موبایلش موبایلشی لینگی کرد زهره شروع کرد به خوندن و ریز ریز خندیدن لپاشم گل انداخ. گفتم آقا تونه گفت نه بابا آخه اون بلده بگه خوشگلم چطوری؟ اینا رو از رو گوشیش خوند گفتم نمیدونم والا پس لابد مامانته گفت دلت خوشه ها دوست پسرمه گفتم چی؟ تو کی جدا شدی از شوهرت چی نگفتی دختر؟ گفت چقدر تو خنگی شرمین من از اون مردک شدم که خرجیمو بده گفتم به خدا اگه من بفهمم تو چی میگی؟ و واسه سنتیه فکرت این روزا آدم با یکی ازدواج میکنه آرامش و امنیت و پول و اینا داشته باشه هر از گاهی هم با آدمای باحال دوست میشه روحیش خوب خوبشه گفتم ولی نمیدونم شما مدرنا به این روابط چی میگین ولی ما سنتیا بهش میگیم خیانت گفت چی بگم بهت و دوباره با بیلینگ موبایلش رفت توی عالم دیگه من فعلا کنجکاوام برم ببینم این دوست پسرش چی مینوش براش این انقدر لوپاش گل مینداخت روزنامه روزنامه فعاله جه روزنامه امروز فعاله جه پیشون روزنامه آرمان امروز از قول مادر سید احمد خمینی خطاب به او تیتر زده بود که همچنان خوش بدرخش. میگن سوز که به بچه‌اش میگه قروم دستپای بلوری تکا تو همین سید احمد مامان نشه مادره دیگه از چشم اون الان سید احمد داره می‌درخشه والله روزنامه ابرار از قول معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی امروز تیت زده بود که دامنه کارتون خابی بخشارو تحویل کرده رسیده است خب سلامتی به این میگن جامعه بی طبقه توحیدی که هم اول انقلاب وعده شده بوده بودند نا تحویل دیگه کارتون روزنامه رسالت امروز تیتر زده بود که تأثیرات افاف و حجاب بر عملکرد مغز و اعصاب چرا میام به رو میارم جدا از شناختم یه جوری پناه میارم به هجابم هرکی دو هزار تومنگه داده به من بیاد سه تومن بسونه بره من ناموس شیهم من جای مامان شما ها هستم برد. نکنه که آنجینا جولی ایران توی گفتم نه اون مامانه حداقل در مورد خان چرخنده که روی مغز و عصابشون تأثیر خوبی ظاهرا نداشته فرصت برنامه امشبمون هم به پایان رسید شبتون خوش تا فردم وقتی هستی خوبه خوبم بیتو قسمان هده نیست با تو دقدر ندارم دیگه هیچ چیزی مهم نیست نمهم نیست چیلو آتش، سونامی شد زل به من وسط این همه وحشت بیا هم قدم با من دیگه اکسیژن نمیخوام توی کربن ال نفاس تو تنه پس جدیدی من میشم از امروز یه هوا به ایمودویه برج نهونازی باتا بانچنر رو تو جنگ جهانی اسنی هر فا به مچش به آب تو کره ما سر تو بی خود یک کشان تازه که تو آسمون رسات شد چیز کدوم برام مهم نیست بخیر اتفاق تو هست وقتی میشه با تو خوش بود وقتی میشه دل تو بم برای تو مدار خوشیت تو که میتونی بچی چاوه نور جمع یکی کام با آبی واسه دردای تو قلبم حکم تخری گرفتم انقدر واسه ن نخ...